بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله بر الاملین و صلّ الله علیه و سیدنا محمد و آله الطیبین الطافین المعصومین لاتو داعیت علی عداین اجمعی الله ما فرما جمع مشترییم رحم نا رحمتیکی رحمت راهیم راجع در مرحله اجتما مرز شد که اهل احل سنت و جدادانه بخش کردیم بلاحاظ شیعه هم از کردیم دو مرحله کلی در مسیر اشمان هست که در کتب و که ما هم اینجا از آن مساره کردیم و این کافی نیست یکی هم در بخش های تکلیقی و سغاری یعنی مواردی که در سخت شیعه اجماع شده خب اون یک بحث خاص خودشون میخواد خیلی طولانی اون بحث این کتابی که مرموم آیاش حسد الله توسکرین روشن به نام کشور بنا که خب این نسبت به مجموعه علمه های ما راجع به اجماع کتابی به این خوبی روشنه شده اشکالاتن به شرابانه شاید خدود سخته یا چیزی کمتر از کتاب اختصاص داره به موارد نقد اجماع در همین کتاب اینچه که به اصطلاح من موارد تفریحی است با این متاسفانه تحلیل نگردن در موارد تفریحش نظر خود تفریح حالا اون بحث ما چون باید بحث دردادانی بشه در فرق بشه نهی دردادانی یا بکنه بحث اجماع با دو سه سال مواردی در فرق شیع اعضای اجماع شده و های شماعی تحل ما عرض کردیم که اون که ما الان در میان میرات های شیعه داریم فیلم پیش ما موجوده مجموعه میرات های ما مجموعه اینو ما اینطور تحلیل کردیم یک برمی به دوران نص و نصوص ما و روایات ما و توضیح دادم که در بردر روایات ما اجماع آمده حتی همین قادر کلی که فرموندن که لا تشتا محمد گهلا زلاله این تو بعض از روایت محمد حتی صندوق دریجه و در ادهی از مسائل کلامی هم آمده که خوب برشون خوبه در کافی و در کافی همه در مجموعه از مسائل فقیه هم آمده که ها در مهمالا به نصحا این تو تعبیر داریم اما هر زیاد نیست این تا حدود سالوی 250 سیست هست این وضعه این نمزار میراس های ما به توضیحات شده است. از سال هایی از به خصوص در بغداد زمین هایی داره اجماع میشه که اصلا این مرحله یک دومه اجماع درشی هست این می تا سال های چهار ساده پنجام توضیاتش بزرش یک خصوصیات این مرحله سال چهار به این که با خروج شیخ از بغداد دیگه اون حیبت محتب بغداد افتاد ما خوبهای دیگری هم داریم که متعصد من در بغداد هم بغداد هم نبودن مثل رسولا در کار مثلا در سوریه بودیه لبنان بوده در سوریه بوده شام بوده بلادش هم ما مثل اینها هم داریم مثل این افراده کنجیبی اما که امده یک کار حتی به لحاظ جغرافیایی به سلام خود بغداد موضوعیتی داشت و با خروجش از بغداد اون هزمت این مکتب بغدا که اصطلاح ما مکتب گوغم برداده این عذاباتش هم از بین میره انصافنده یعنی عذاباتش محفوظ نمید به هر حال این مرحله گوغم دروای اجیما درمیان شیعه است. تو این مرحله در, در مواردش انصافنده احتمال تلقی هست از زیاد نیست احتمال تلقی از محصولی هست اما به هر حال طبق قاعده یعنی اصلهای فقیه باشه اون هم هست و این دیگری هم داره که چون توضیح داشته یه که تکار داریم و سلیم از سالهای شهازهای دار پنجاز سال ساله که علامه الله علیه که اینجا یک مقداری دعایی ما فقه های کامل داریم که روی اجماع نوشته شده یه دوقعی کام مثل فرسین قنیه نزهده یه دوره کامل فقر رو اجماع داشته شده به خلاف مثل که دوره کامل فقر روایاتی هست یعنی یا مثل موقع ایشیخ مفیل یا خود شرایط شرایط مغزمش رو روایاته کتاب شرایط معظم کتاب شرایط رو روایاتی این که تطریقی است و دیدگاهش هم به اجماع مکمل خبر اینطور طورت که اجماع رو در مقابل خبر ببینه اونجه این مکتب بسیار شبینه مکتب شیف توسی اما مهداری تر بزنه منسجمتره جمعه دورتره از تا از کاریم به لحاظ تنظیم ابواب فق اولین کتاب فقهی ماست که این بذاره یعنی اولین کتاب فقهی ماس که کل دفتر رو به چهار بخش سخصی کرده قبلشان نمونه مبخش ها رو برسه بود و هر که را هنوز هم که هنوز کلمات احل سنت در تنظیم فطرشون مرتب نیست این در فقه شیعه به برکت مرکومی صاحب شرایع مرتبه نیشون اعباب عبادات داره اعباب عبوب داره اعباب ایقاعات داره این سه تا اعباب حکام مثل عرص و قصد اینا داره این تنظیم چهار که کل فطر رو به چهار باب اصلی تقسیم بکنه از ابداعات مرکومی صاحب شرایع این کار الان در کتب اردسونات الان هم نیست اندسونات کلا نظرش فقهای ما قبل شرایط نمیذارن اینه این شریه اظهار ای. کرد هنوز که هنوز گاهی داریم مثل مناد صالحی یکی دو باب اظهار اگر پیدا بشه که شده نشده بله. به طور و کلی هنوز که هنوز در تفسیری مثلا فرض در مثل منهاج 4 اصلا شروع کنه به شرایط همون منهج منطقه همونه اما این تطمیم به سابشاره نه سابشاره تقریبا میشه بخیر به طور و خلاصه فتح منصوص امامیه رو محن کتابه شاید مثلا این رو ارز میکنم ما اگر سیگه شیگه احتمالی ده مورد تاک میسته مورد داشته باشیم که در منصوص باشه و سابشاره نهواده باشه از دستیشون قلعه نیشون افتاده برای یه مقدار متعادلی هم از فقه تفریعی داره ایشان شیلی افراد نگرده حسفاً نگرده یه مقداری از فقه تفریعی از کلم فقه تفریعی در چیه تاریخش محسوس شکل واضح یعنی نداره یه مقداری هم از فقه تفریعیشون اونده لیکن موظم کتاب فقه محسوسه و این منحق شکل هم هست لیکن ایشون مرتبش کرده جمعون جون کرده اصلاً منهجی که مقدار ابهام داره تناقض داره ادعا رو داره یعنی روچانیز ابهام هایی داره برای چیزایی که این مبنای اما در این اینها دیگه یک کو اسلاف شده تقریبا این منهج شرایع هم منج عام تا حالا که ماست تو این دردی ای که خدمتتون هستن تقریبا منج عام همین شرایع مثل من مثلا هم فرس ان فوز رو نخر نه همون یکی در مغنه او شیخ طوسی یا نهایی بود موارد فقیلی که روایت داره نیمو متن مطم روایت باشه م مسائل رو متعرض شدی که روایت داره ازده از مسائل از فقیل که روایت نداره استلاح ما اینه هر فقیلی که درش روایت باشه فقیل منسوس میگه روایت نماشه فقیل تفریی است چون این فقیل تفریی ما کتب مثل ابن عبی عقیل و ابن جونید هم هست اما مشهور نشده. چهرت فطح تفریهی فی شما از زمان چهر دوستیه اونم از کتاب محسوس بفر این مرزان هم خلاف هر دو از محسوسه و بعدم ازده این رو گرفت مثلا کتاب میسونم بس وحسیله مال ابن حمزه تویسی مشهدی رحمان الله کتاب بودشنگی این تقریبا میشه که فهرست بندی کرده کتاب محسوسه تقریبا یک <تصفح> امتیاز کتاب وسیله هم عدد داره مثلا ولی مفسرات فلان مثلا یکی با اعاله ساسی خمسه همه رو با عدد عورد خب تو عدد این تکامل علمیه اصطلاحشون این بگیه اصلا خود عوردن عدد چون معناش احاطه به موضوعه تمام موضوع رو باید کاملا احاطه پیدا بکنم تا بتونه عدد بیاره تق... یعنی قبل از من نگیدم کتابی رو مراجعه من خبی زیاد نیست کتابی را برداشتیشم دو تا ادغی میاره مثلا ویجو علی المعموم متابعه تو ما فی خمسه فی سته همرو با آورده این کتاب به اصطلاح وسیله حمزه و معظم کتاب رو که من تحقیق کردن الان در واقعش که خودم دیدم این محسوس یعنی محسوسو کرده البته به محسوس هم توش هست اما نسبتا گفت محسوس شیخ طوسی رو تقریبا تانقیس کرده معظمش متاثر به مقصود شهر خطوسی است از پرین یه مقدار فتا آقای مرگوم شهر که تطریقی بوده در برواد نبوده پس کنی توسط وسیله آمده توسط ابن ادریس آمده توسط ابن زهره آمده اینا یه آنسان شامد شا منجر بشی شد این آنسان در شرایه آمده اینا منجر شد به تهبای علامه در قرن هشتم، این زیر بناه های البته علامه است البته علامه مثل متعدد داریم. خیلن در اخبار کتاب به ما نرسیده در رجال ازشون به ما کتاب رسیده در فقه مقارن یا فقه خلاف تسکیره ما رسیده در انواع فقه به اصطلاح استدلاگی و به استدلالی و مجاله فقه از ایشان کتاب به ما رسیده در بچون کتاب دارن در کلام دارن اصافه خب ایش را به اصطلاع دارت معاربی در مجموعه معارب دینی چیزی که ایشان اضافه کردن که شیخ نداشت و این هم خوب برای خودش ارزشی باز کرد مثلا تو مسئله اجماع تو بعد و تحصیل گذاربه باشه و تا که من خبردانم اولین بار علام این کاری کرد اختلاف پتاب های فقه شیعه رو غیر اختلاف با فقه های اهل کتابی کتاب بنامه مختلف و شیعه پی افتان شریعه این کتاب رو نبشن. ما قبل از ایشان ندار این طور کتابی و تا حد زیادی هم شبیه با این ایت کتاب در قرنه هش کنه شبیه همون روش به اصطلاعی این روز ما دانشتایی این متن مطن عبارات رو چون ما عادتا معروفت این کتابیه که در فتاوازشیه و اقوازشیه نهبو می کنه کتاب محتاح کرامه محوم سیده آمدیه محوم سیده آمدیه لغنانی عادتا محتاح کرامه حتا محومه سال جواهر گاهگاهی مثلا کل یک تحتخته از اون چاپ قدیم از کل, کل, کل کتاب مرسال کردن اسم میری برای این مفتار کرانه. مفتار کرانه. که در چی بود؟ عین عبات مختار کرامه داره. مثال کاممه که بر هاشه شده در آرا فوقهایشییه خب کتابی که خیلی زماتی چیز غلط نگاره منگارره متأفکن و کتاب مرسال کردن نررم میکنه اما معظم کتاب به صورت نقل مضمون و فتواز. از اندنظر عی ال در دانشگاه ها، بیشتر محتمی کار میکنن اصلا نفتار که میگه وله ها صدوق لا مجوبی حالا ممکن است اگه عباط صدوق رو بیاره شما ازش وجود نفهمین استحباب بفهم بگر کردی یعنی. علامه اینجور نید علامه محتم رو بوده چرا دایی هم اختصار میکنه میگه وله هده هده نمزه و فلا. اما غالبا محتمی میاره خود علامه قدرت الله نفسه محتمی میاره البته علامه اختصار میکنه این و در اون مرسی خود ایشان منعکس نکرده در این شاپ جدیدی هم که اخیراً شده از دوره علما مختلف اونجا منعکس شده که آقا 500 600 بحث میکنه علامه این محضر ای کتاب با در نظر میگیره که اون جایی که حذف شده نقطه نمی که انسان بدون اونجا حذف شده این داره در کتاب مختلف علامه و نکاتی دیگه هم داره من میخوام اون وردی اصل این کتاب خوب بود. محصول تو مرحص ما که خیلی خوب بود چون بعضها مثلا گفتن ادهر ازامه على اجماع در کتاب مثلا تذکره لیکن که در خرف نقل قول مخالف از اون من دربای اجماع آمده از اون مخالفتی مچنچ شد. لذا این بحث شد که این اجماعات به معنای مصطلح که اجماع باشه نیست او خودش دربای اجماع میکنه خودشن لقل مخالف میکنه کتاب مختلف علامان دیو زیادم در توضیح بدن دیشتر کنمات که این توضیح و نصافه هم کتاب خوبیه اصل فکر بسیار فکر خوبیه بسیار به نظر خودشان نجده لمیاس برنیلی اهل به راست هم اینکه و اولیش راستان میگن لمیاس برنیلی اهل بگی نه و مخصوصا رو بشه چون رو بشه استلاح نموز اکادمی و علیمیه یعنی سر این کنه مدن عبارات رو بیاد و امتیاز اساسی علامه قدس الله نفسه از درص کتاب نه میکنه که فعلا در اختیار ما نیست نه الان از بعد از علامه در اختیار ما نیست این کتاب ها یکیش کتاب الفاخره مولوی شوفیه یکیش کتاب ابن عبیقله یکیش کتاب ابن جنید یکم رساله علی بن باو در صدوقه در اخیرا تا دیگه شاید مثلا چند صفحه در یک نسخه بسیار نفیس قدیمی از این سنگیفه رساله علی احمد پیدا شده که چاپنگ کردن خیلی کمه بزنیست نسخه قدیم سالا کدا کنم جلی نباشه به هر حال چون یک مشکلی که پیدا شده برده این نسخه خکی جلی اینا توی ایران هم برده بودم و هم برده بود که از اون کارش تخصصی جلی نسخه خکی بود از اون که تخصوص خودش و پدرش هر دو اوگاه رو دیم خیلی تفنیل داشتن مثلا مختلفتان سال پونیسر چیزتر جهره می کنن آشق بودن خط و بره و کاغر کار اینا این هست متاسفانه الان بعضایشان سختیتون هم می بودن خطی زاهران چه باشه حالا یه رساله علاقی مواقع شده چه عدی خدا کنه و هر حال کتاب مختلف علامه نقد از چند مزدریست که بعد از ایشان در اخترکیسی اخت راه ما هم به ایشانه از کتاب ابن عقیل ما همون نگه این جایی مثلا تکتوکی باشه و الان منحسنن به خود مرمون علام از خیلی صدوق صدوق پدر چون مرمون صدوق باید میرا قال عدیفی رسالتی اله. چرا آراع صدوق پدر گاهی جای دیگه هم دارید اما از خود رساله علی نبابه منحسن در علام است و ای کاش این نسخ نوشه میشد استنصافم تو کنه بعدیشان استنصاف, استنصاف نشده و بعضی جهان عبارات ایشان محله هستند احتمال میدونن نسخه لمن قلتی داشته و چون نسخه دیگه نداری مقایسه نمیتونیم بکنیم مشکل میشه واسه این مطلب از منجوری نمیکنه این آدم اصلا سعی دارم میگم اینکه این درس واضحه ازای شیرا اینشو خاطری متاسفانه نسخه بیان نداری به همین نسخه اما از از نهایه جای دیگه نقل میکنه این دیگه دیگه مراجعه میشه مثلا توی نهایی توی مبسوط خیلی تفخیز داره مثلا توی مبسوط اسقاط اونجا زیاد داره چون طویانی هم هست و توی مبسوط منو رافیان و شیخ که شیخ زی در مبسوط تعارض هم داره احتمال می نرم که اسناد به پاک نویزش نشده تومتون نوشته شرفی جلو همین نسخه مرد، مردم مردم استفاق علماء استنساخ کردند بخیر یه تطبیقی چون که 400 تا دیگه همون مسئله تکرار می‌کنه که لاغوشه فصاد میده. اینجاست که داره. نمیخوام الان وارد شدم ان خدا اینش رو مراجعه کنه. و لازم به هر حال ائمه قدس الله سره نشدن. و در اجیان این تناقضارو منتسب نشدند. و خیلی بعضی از جهات کامل نقد نکردن مثلا مثلا در خلاف هست ایشون و با اون چیزی که ایشون از مخسود هست مخالفه. این نقایص داره کتاب. و از به طور طبیعی هر کسی که در یک رشتهی محسس باشه اول اشکالات زیاده چون تازه این کار کرده این طبیلیه یعنی این اشکال به نیست در قطعه هر کسی که محسس باشه بود ناشه رو اولین اول این کتاب در نرشته نوشته شده کسی قبل ازشون ننوشته بعد از ایشون هم جز این کاره کنفی شده بعد از ایشون هم کسی از علمان ما این مقدار عبارات کار علم اخلاق اونجایی که عباراته خیلی خوبه و مثلا همین کار رو الان در جوازه ما داریم. جواهر نسبتا احوال خوب میکنن و که مشکل جواهر اینه این عباراتی نمی‌آره. بیشتر از مثال کلامی هست. من تاریخی که نقل میکنم یعنی هم برای اینکه شما بخواید کار بکنید، برای چرتی رو برید توضیح. پس بنابراین از زمان علامه این تغییر اساسی در تفکرات ما پیدا شد. میروزان در تاریخ گفتید اولین بار ایشان آمدن کتب مثلا کتاب فغیه و ارزیابی کردن کتاب تنظیم رو مثلا تاریخ شیخ در تفصیل فلان اینترو رو فلان سفیه ضعیف و حسن موصل این در شیعه ما نروشته ببینید مرحوم شیخ طوسی در 40 مثلا 3 420 این حرفا حرف رو نمیشه حالا مثلا 826 رخ داده یعنی سال بعد این ارزیابی شده شیخ صدو مثلا این سال رو روایت در فقیق عورده بعد از شیخ صدو ما اولین کسی که آماده گفتی این برای و حسن علامه چیزی در حدود چهار سال بعد از ایشان کم تارید سال سی سال کسی که در فقیق شیع آمد گفتی برای حسنه علامه هست این علام یعنی آمد اون موازه سی با که خصیم روی که لرجات کرده بود تطبیق کرده در فرح اولین شخص علامه است این تقییداتی رو که علامه ایجاد کرده اولین شخصی که آمد حدیث شیعه رو به طور این تقسیم اینجوری به شهات انجام داد علامه است البته علامه است از افراد مرموم ازنطاووس سید احمد ازنطاووس نه سید احمی اون معروف ازنطاووس معروف ابو حسن علیه این طاووسه این نسید احمد این جزب رجالی هاست مثل عبدالکریم اونم مرز شو بلادهی سه از این ابن معروف اینکه اینه که صدیه که کار کردن در رجال و علامه از الله هم ایشان و رفیششون ابن طاووس که این هم در رجال کار کردن هم رو تو فش پیاده کردن این من این مخابه یعنی اولین کسی که آمد رو کتاب یا که داره چیز عجیب در علامه کافی و خیلی مراجع نمیکنند نمیفهمند راه نفع میکرند که چرا؟ چی؟ این بر من شم مراجع که من مخلصی مراجع کردم یشون از کافی نعمل نمیکنند ولی از بعضی حدیثها تهدید میاره ضعیفه مانند است میگی که اون همون حدیث با اون سنده اخیره چه همون حدیث همون می‌تونه تو کافی است و سند سریع که عجیب یشون میگه که حدیث رد میشه که اون ضعیف همانن وظیفه کافی رو نگاه نکرده. چون شاید مشهور بوده که کتاب تهذیب کافی و زیاده داره شاید تو اینجا. و خیلی عجیبین برای ما که واقعا تعجب آور میده که چطور شده ایشون به کتاب کافی مراجعه نکرده و اسانید کافی رو روی خود کافی تصریح و تذیه نکرده. به هر حال من چون راجع به علامه باتیش از این صحبت بشه ایشا که دست خطر هم صحبت می‌کنه. دروس الامام علامه اولین صحیح ماست. این من احتمال دادم فرما اصلا روشن خدا نیکرده اصلا به نابحثای علمی دو صورت به تولیه به اصطلاح نوش اصطلاح اصطلاح یا به گزارشی یا این که نامه ترمیم ارزیابیه. ما اینجا الان داریم حالت گزارش کار میکنیم ما اشتباه نشه ما از کاری ها اصلاح های گریز شروع کنم تخصیم عریق سبیوها اصلا علامه از سال 700 این کار کرد. این تعبیر به صدی و حسن رو علاوه سال 700 اینه من چند بار ارز کردم این ارزی که من کردن تا ارزیابی نبود اشتباه خیلی دقت بکنید چون دیشت بسند چه که اون ارزیابی بیرن. یعنی یه برز که این واقعه تاریخی اینطوره اونا از سال 200 مشروع شدن ما از سال 700 پنج شخی هم نیسته فاصله زمانیت میگه لیکن بحث دیگه آیا دی. مثلا شیعه تا سال 700 حدیث شناسی نداشت مستفر اون بحث عرضیابیه بحث عرضیابی بحث دیگه نیسته اشتباه نشه با گذارش در بحث عرضیابی در بین شیعه دو دیدگاه کاملا متناقض آجه و علا داره اخوالی که میگن این کارو بسیار کار بدی بود یک روشت که شیئه 500 سال داشتی کن به هم دید به قطعی تو بسته ارزیابی کن پس کن کن کن کنید تو مرحله ارزیابی اخواری ها به شدت هم نمی کنید که این کار کار بدی بود نه کار خوبی بود به زده هم خب قبول دارن که نه این کار کار خوبی بود این بود باز انجام میگیره، که سالی که بعد از علامه تا زمانی که به خدمتون هستن رفتن رو این تصمیم بردی حدیث مخصوصن خیلی بیه اعتنائه به اعراض مشهور نکردن و حقیقت همین شخص رو پیگیری کردن اون خط این بود حدیث اگر یا را با صحیح یا لاحقا راضی سره ساله او خواهد صحیح باشه یا نباشه موسطق باشه هسته مثل آقوی یا صحیح مثل صاحب مداره من صاحب که معیار فریضه است که خطاوش شذوز آز, از این جب. شما احتیاج ندارید این قرآن آقا فقیه شاذی شده خودتون الان تون اوائل ورود او در فرقه. اگر بناتون ببین بذارید من به طور کلی خدمت رو در فقه شیعه بناتون ببین بذیدن که فقط حدیث صحیح یا صحیح و حسن یا صحیح و حسن و موثق یا صحیح و موثر حالا چون آنکه این صحیح و موصل قبول چون مبادی مختلفه اگر بناتون دی، به که در فهر با این معیارهایی که علامه معین کرده فتوا بدیم از ان شما شاد خواهد اما این الان بگذیم اتا در فهر اتا ان فتواه شاد خواهد داشتیم یعنی اول بگذیم یکی دردیم تویش چون ترکیب چون ترکیر اینطوریه. این همون اشکال معروف اخباریم نه اینکه از سال دو ما هنی نداشتیم، اشتباه ن ما از سال دو نداشتیم مثلا سال ۷ یاد گرفتیم. نه ما از سال دو داشتیم این روش رو نداشتیم دذت این وش رو که اسم ملارزی صندلب بکنید و مثلا خوددا اهناف مثل, خود احناف مثل من با مثال غیرت ما. خون اهنا تا سال حالیه مثلا، سال دیدی سیصد خبر مرسل قبول میکنه خود ابو حنیفه خبر مرسل قبول میکنه چند تا فتوای معروف داره که رو خبر مرسل نمکنه بعد از سال دیدی چون شافعی شی اصرار کرد که خبر مرسل قابل قبول نیست از رساله شافعی که در اصول تقریبا اولین کتابی که ما الان در اصول داریم مدورمورات در سال شافعی ماسر عزالدین سامانی در این رساله شافی نمیش 3 صفحه کلفت شده ایشو یادم فقط دعوای شافعی سر خبر موصله با انقولی انقول با اصرار که خبر موصله رو قبول بکنه خب بعدها خیلی از اهناف مشکل دارن که خبر موصل قبول نمیکنن با اینکه امامشون قبول میکنه در از ام این درazem این نحوه تحول در یک مکتب یک امر خیلی غیر طبیعی نیست فوبهای ما از سال دیویس که از سال دیویس مکتب قوم هم شروع میشه مکتب اول بردار 150 شروع میشه تا حدود سال 13-13 هم تو مکتب بردار هم تو مکتب به اصطلاح قوم روایات نظر بیشتر که روایاتی اصلا ما تعدیر اجماع رو در هر دو مکتب کم میدیم اصلا میخوایی کم تعدیر به اجماع اما تعدیر به روایات خب طبیعه هست یکی از شاخصه های مکتب اول بردار و مکتب قوم تنقیل و پالایش حدیثه این پالایش حدیث طبیعی بود بشه. و این تنقیل و پالایش نیامدن از راهی که اقل شنت رفتن انجام بدن ما این توضیحاتون این گزارشی که من دادن این معنیش این نیست که از خواب ما از سال دیویش مثلا دست بسته بودن یا مثلا اوهامو احادیث ضعيف و جعلی و خرافات رو قبول از سال 800 مثلا که این تصریفی شما از هر نه از همون سالهای 150 این تنقید شروع شد مشکل کار چی بود مشکل کار این بود اهل سنت از سال 150 که اومدن حدیث رو بررسی بکنن و تحلیل بکنن صدور حدیث رو راهی غیر از بحث رجالی نداشتند چون مثلا در سال 50 این از اون شیوه، از اون شیوه، از اون از یک صحابه الله. راهی غیر از اینکه و رو بررسی بکنه کی هستند چه کارا انجام دادن، تلاقی و به عبارت اهل سنت نوشتار از صحابه نداشتن مثلا یک مجموعه 260 تا حدیث،, حدیث از عبدالله مسئول رسول الله پنجاز تا حدیث از سرس ابو حرره رسول الله از ابو حرره مال فساد و فساد ماله برادر اون چیه منبه درازش عبد من عبدالله من منبه 144 حدیثه این داره که او از ابو حرره از رسول الله یه حدود حضاب خورده هم حدیث از عبدالله به سر همراهات هم رسول الله خیلی کمه چیزی هم داره؟ متفق، متفق، ما تحت وزیاری در مجموعه مدروناتی که از زمان رسول الله بوده صحبا کردی که جاش اینجا نیست دارن کم لذا خالی نفت های افتاد به رکان چون چی بیده چشون نبوده قرار کردی مثلا همین کتاب عبدالعاق سنه همراه تا زمان قبول مثلا با قبول ندارد مسلمان قبول ندارد از نرزمان قبول از دیار زرگان همین میشن قبول ند بله احمد نحمد قبول دارد قبول. داره. نسائی قبول داره. یعنی همون اینه وقتی بحثتن نوشتار شد میاهد اون نوشتار و عرضش اون بحث میکنه شیعه که از سالهای دیلیست سال پنجام از بغدار تو بغدار بناشت رو درسیه میکنه نوشتار داشت این سر تفاوت ما با عرض زنند روشت رو چی میکنه نوشتارش از امام صادق بود، از امام باقر بود از موسن جدر بود شیعه نوشتار داشت لذا خواهی نکالی شیعه دیگه نه افتاد دنبال بحثه یعنی بین از 150 تا زمان رسول الله نظر دیگه؟ صحبت این بود که ما الان سال 150 هستیم چطور خود به رسول الله سوال سن به بحث رجالی سر داشتیم ما مثلا میگیم ما اهل سنت به تسیح و چار یا چند قسم حدیث و اصطلاح حدیثیشون تقریباً متعارفشون نیست که رسمی 4 تاست یعنی در شیعه اینطور شد مقدار شیعه گرفت از اصطلاح اهل سنت که در کتاب درایه‌ی مرحوم شیرازی تقسیم اصلی حدیث 4 تاست تقسیم پریش 28 شد حالا ماها که مثلا سایفودی اصلا وارد این تقسیم نمیشه نه 4 تا نمیشه چون می یا معتبر هست چه نیستون محلل و معلول و مسترب و این فلان فایده نداره قریب و شاز و مازو هیچ مثلی از این روها اون تحصیلی که در کتاب درام شهید آمده البته این کل تفکرات جمعه سنیانی نیست این یه تفکریه یه تقسیم بندی است که مرحوم شیرازی جمع کرده جمع جور کرده شیعه و سنی شیعه که نداشتن مجموعه سنی‌ها رو با شیعه‌های اینا در قراواتی کردن در واقع این تقسیم بندی چهار تا تقسیم بندی اصلی سحیو اعتن ظریف و, و موسع 28 تا تقسیم بندی غیر اصلی مثل اینکه این مستره به معلول این اصطلاحات مراز اصطلاحیه مراز, مراز ما چارد، نادر، غریب اصطلاحات اینجوری اون تخصیلش هم 28 داز که در اما تو علمای ما هم خیلی دنبال این نه قبل از یکیون هر کنه نه بردید پس بنابراین خوب دقیق بکنین اون گزارشی رو که من دادم این گزارش تکمیل بشه چرا اهل سنت به رجال رو آوردن؟ چون چاره این نداشت از سال پنجار سال پنجار تا رسول الله با تحلیل رجالی بحث کردن به وسیل رجال پل زدن چرا شیعه نیاز سیزنه که شیعه بعدا سال پنج سال تا در افتاد خب اینا به رسول الله باید به اینا گفتن ما کتاب حریض میگیم عن عبی عبدالله یا عن رسول الله دیگه اون پل نزده به خفتیم به جایی که این برسوی ما ارز کردیم پس خواب ما یواشه آشان نه رو ارزش کتاب ها کار کردن ولیزا به ذهن خود بنده بندهی چون نهیدم کسی حالا چون همیشه از الوقت مؤسس شد باید حرف روش کار بشه از سال دیوید که اهلستان از صحیح رو راه انداختن شیعه هم بحث اصول رو انداختن مثلا کتاب حریب جز اصوله اما کتاب و اون سعید مثلا روزه مصنفاته این اصطلاح و حصول و مصنفات پس خب دقت بکنید ما وقتی بیم از سال دیوید چیه این اصطلاح رو شروع نکرد سنگی رو شروع کردن از سال هفته شروع کرد این گزارش بود ارزیابی نبود هم باید انسان تمام عوامل تاریششی که نکنید نونو که یک گردش نگاه بکنه سر این این شد اهل سنه شروع کرد در خودی خود به سنه مثلا اول ومن خط تشعن الرجال بالعراق شبه تصییم می‌کنه یعنی چون تا اون زمان خیلی فلان از خیلی خیلی خیلی قرآن داره و همه شیطان قسم خورد برای آدم و حوا لکم لمن به خداوند آدم با این هم من گفتم که واژه شیطان بود شراب برو خودگو خستم خود من تا نه کسی که خسته و دوام بخوره نه یه دوستی که خسته و دوام خودم میام و دارم گویم فرآن قرآن نماز این جورم نه کسی دوام بگیر این اغلب من فتح شدن رجال بلکه اروش شو برد شد و مساله ما سرتمام کازه میشه شو هست ابگای نزدیک شدی به اینو مامین که یه حدیث کننده یعنی از سالهای یکی 100 چندسی یکی حالتا مثلا سبه پنجاه رمان امام سادر اول محفظ تشند رجال به ایران این شبه که بردازی کنه سدر سدریسی میخوره بخواسته این راهی رو که اینها رفتن این روشن شد برای شن. طبیعتاً منجر شد به سالهای زیریس چی شد شد تقسیم عدیس یواشواش این بحثا راه اصاد شد صدیح ها و حسن ها و زریف و این تقسیم بندی ها شروع شد شیعه در این وقت نیاز به این کار پیدا نکرد به جای اون ها گفت این کتاب حریزه این کتاب الحج ما و این کتاب محمد بن مسلم این کتاب علی بن اینجوری بحث کردن بناذا عرض کردیم در بحث خود دقت کنیم، علامه از سال 800 این کار رو شروع کرد اما نه به این معنا که شیعه مثلا خیلی به دانشات مثلا عجب و داشت مثلا راجع به ما در میان اهل سنت هم داریم در کتب درایی اهل سنت مثل که فایق حفی آمده ما هم در وقت ذهنم واقعا خیلی هم سریع فن لازم نگاه کنیم که با کامپیوتر نگاه کنیم بخونیم چندش بگم علمو ان حدیثکم هذا دین و فهم و ام من تاخذون دینکم این چون نمیشه که این شیعه باشه از سال 20 لاوالی و تو همین سلقه همشون باید نبول بی کرد علامه اللهم آمد این کار اصلاح کن اینطور نیست این اشتباه نشه من اولی گدارش بود اما از آقاده عرضیابی شیعه به خاطر اکتوب و بست علم فلناس که فلناسی بندن را سریع سند از فعل بسیم ای که علناس زمان هر لا یعنسون فیه الا به کتبه و نزا خوب دقیقه شبه علامه از این زمان که هم بحث اجماع رو تا حد اجماع احس یه مقدار در کلمات خود بغدادی ها مثل شیخ و یه مقدار هم در کلمات حتی خود سید محتضا یه مقدار در کلمات علامه تقریبا مراده از اجماع یعنی اجمالا رأی شیعه در مقابل سنهی ها رأی ما در مقابل سنهی ها که این شیعه اون اجماع اصطلاحی هم نیست چون اینها فرق خلاف نرشتن اگر انسان تفاوت خلاف نشه، یعنی تو اجماع این تفاوت رو میکنه مثلا این کتاب فاضل مناسب موضوع عندناش آیه مغنیه کتاب از تقلمذابل اربعه خمسه. خب رأی امامیه را مواظع. مراد امامیه مطلقا همه فقهای امامیه اهل تشیعون باشه. دقت میکنی یا همین کتاب از تقلمذابل اربعه این آیه جزیری که از علمای از هر بود. اصلا این که غلط‌گمونشام زیاد داره. و مرایه مالکیه میاره. این مراد ایده از مالکیه است. حتی اونم برای کتاب فقه المظاهر العرب من چند تا عرض کردم کتاب لغت کتاب بی اساسیه. در واقع رأی یک عده از علمای مالکیه نه رأی حتی ممکن رأی خود امام مالک نباشه. کتاب خاصی کتاب المظاهر العرب. علی ایها حاضرین اینو خوب دقت بفرمایید کسی که سر خلاف می‌نیزه وقتی میگه بعداً اهل امامیه خیانتهای اون چهره کلی رو میگیره نه امامیه کل واحد من فوق هال امامیه به اون معنای دقیق نخواهد بود چون یه مقدار دعاوی اجماع ما تو اون مسائل شده لذا من احضو کنم همه این دعاوی اجماع رو باید یکی تحلیل کرد کجا گفته شده کی گفته شده زمارش کیه در چه فکری گفته شده در فقه مقارن گفته شده در فقه شیعه گفته شده تمام این نکار و ذرا بله علامه ارز کردید بشون روایت تقسیم بندی حدیث کرد قبل از ایشون نبود این تقسیم بندی را در فقه کشید، قبل از ایشاد در بود یعنی عملا آمد رواید کتاب فقیم رو تقییم کرد کتاب فقیم رو تقییم کرد ارزیابی کرد اینم در فقه شیه نبود. مقدار زیادی مسائل شهرت رو مزر کرد اینم در فقه شیه نبود. اجماع رو بیشتر از اون مقداری که سید مرتضا مستدر کرد. اینم توفه بشیه نبود. به قطعه این حوضای وزید. به طور طبیعی بود که بعد از علامه این میارهای جدید که به اسلام ما یه طوفان فکری در ایجاد کرد. یعنی آمدن گفتن اگه طبق این معیار باشین حدیث ضعیفه اصلا سندی زیاد درنشه اما اصحابش فتاوا دادن، شیخش فتاوا فتا داده، شیخ موقید به فتاوا داده، کیش ما چیکار این رو ما اسمش می‌کنیم طوفان. اصلاً طوفان نیست شما، اگه دو تا جریان مختلف هوا تبدیل به طوفان میشه دیگه یا بیا باد. مشکلی که شد بعد از انام این مشکل پیدا با ما معیارهای کیشون درست کرده بودن، این خیلی از احادیت و اصحاب ما جور اثر این کار چی شد بعد از علامه همتا مکتب پیدا شد یک از خود خودشان مثل شاگرد شاید پسر ایشان شهید اول این تفکر در شیعه پیدا شد که عمل اصحاب جابره در فسنده هست. این که شهرت جابره یا شهرت کاسره این یکی از اقصال عملهای بود در مقابل این تقسیم مندیه ده اخلاقی الان می‌بینید در های ما در اصول دین نه و کاسر دین جابر هر کاسر نیست می‌بینید کاسر از جاور نیست که نه این خلونی نیست اصلاح‌خوی نه جاودریت قبول دارن نه کاسریت قبول دارن و استدلال که اولیانت برای تبیین اون حتا چه تبیین اون آیه مبارکه اینجاست که حتا تلا‌یم کنیم شهرت جزء مصادیق تلا‌ی هرطور اینا نیست اون چی که در اصول نمی‌شه در اجتهیدش جاوریت و شهرت کاسر کاسریت همه اینها غیر واقعی است واقعش اینه بعد از علامه علمایشیه با یه مشکل مواجه شدن حدیث صحیح هست اعراض شده حدیث ضعیف از امرسی چی کاری بگنه مثل شاید اول شهید ثانی اینه یواش شروع کردن این ممنون ولی زا من کرارن عرض کردن اشتباه نشد در هیچ خیلی از خیلی سندن این بحث وجود ندارد شهرت جادره نه اهناف دارن نه مالکیه ما دارن هیچ فقین فرق. از هیچ فقیه در اهل سنت این بحثی ندارن شیعه هم ندارن زیدیان ندارن اسماعیلیان که ندارند کاری با اونها این فقط ما داریم تاریخش هم معلوم ولی قبل نشد این راش شان ای معلوم تقسیم بندی علما من طبق این تقسیم بندیه حدیث ضعیف بود عمل قبائر من از عمل قدما هست صالح قدما یعنی اینجا جابره. جزر در. حدیث صحیح بود بهش عمل نکردند. گفت اینجا کاسره. طرح جابریهیت و کاسریه از اون زمان شروع شد. این یک مردم که تا زمان ما هم ادامه داره. الان تقریبا معنای رایج اج... مثلا مرحوم اینایی مرحوم آیه جدی و ما اینا اگر حدیث سلیم هم باشه ان ها به راسته من و کاسریه از بعد از علامه شروع شد که تا همزمان تو اوضاع ما ادامه داره. دیگران راه دوم راه کمی بود که به این اصطلاح پایمن موننده. مثل حساب مداره مثل صاحب مداره تکوتد در درجا به محاسبه عمل کرده. ولی مبنای ایشان فقط به حدیث سعی عمل بکنه. حتی به محاسبه به عمل نکرده. مثل عوامل خواری، عوامل خواری مجرر فقط به موثقات عمل کردن. باید صحیح باشه. در هر حال باید رادی توصیف شده باشه. اول قضیه ما ولی اون سنی بودی. تو سی کافیه کافی. خب این وقتی وقتی ایشان مقید نشه به جابر خاشه. من وقتی ایشان نجا، انگار فیو حساب کرده. سی تا سی و مورد چهل بودی چون تکاواش مخالف با مشکوره. طبیعیه. نه نه بهشا طبیعی است یعنی مقاضی آرغویی شما هم فردا خواستید وارد جلسه بشین همین. این ساده رشته. فقهش اینجوریه. این یک طبیعت بهشی است. چون از این هم فتوا که سال 150 بود تا زمان انلامه یک راه بود از زمان انلامه راه عوض شد خوباها گیر کرد جال برو عوض شده یک دقیقه فرمودی خواهی نخواهی ما باید مشکل رو هستیم دو اتجاه فکری شد اصلا فکری عوض شد البته بسه اگر دقیقه بکنید انلامه در وقتی که بحث و برور جام نبارد کتاب و مسادر. دیگه زمانی ایشان هم در سال 700 مثل 150 اهل سنت بود مثل اون زمان اهل سنت یعنی چی بود؟ دیگه نوشته های اصحاب موجود نبود چطور گفتم سنیام نوشته های صحابه نداشته؟ رفتم به رجال از دیگه چون با نوشتن کتاب کافی و تحضیب و استفسار یواش داشت اصحاب دیگه استنساخ نشد و البته اون کتب استنساخ شده که کتاب حریز بود که دا ماوردی نام کتاب اولیه‌ ما و اونا کار شده بود بعد از شیخ طوسی اون نسخه‌ونده شاید اندامه هم گفته که به جای نمی‌افتاد شواله دیگر پس هم اون نقطه دقیقاً نقطه فنی رو هر اون نقطه‌ای در سال 150 و 200 اهل سنت رو کشون به درتجالی چی بود نویشدار اصحاب نبود مجبورن بحث رجالی بکنن همون زمان علامه فضل‌پور اون نویشدار اصحاب ما باز موجود نبود لذا بحث رجالی برامون شو تعجب کنیم خب با این سابقه چرا بحث رجالیه که علامه ترکا رواج کرد چون اون نکته موجود بود نکته نبودن مصادر اولیه این دو تا را رال سوم ها بود که اینکه این تونتر هستند این جابلیت و کاسریت و اخباری ها اخباری ها تقریبا به این فکر افتادن که کلن این روایات در ما از این رسول عربع تمام بحث بودن رسول عربع دیگه اون بحث عربع خیلی زندگی کردن. این در حقیقت آمادن گفتن این از هاو ما کتاب کافی پلان اینا همه است که ایمه علیه سلام فرموندن برنان اصول اربعه در اختیار و بوده در این کتاب ها منتقل شده وجای رجوع به اصطلاحات احضا سنت نیست این جابر و کاسر اونا تون رفتن تون ترش گردن این سه تا تقریبا مبنای اساسی در اینجا خب یه مبنای چار رو هست که ما میتونیم تمام اینا رو تحلیل بکنیم یک جمع جوری بکنیم بعد جوان سهل در نظر بگ بعد جا در نظر این که اعراض قدم ها واقعا محصر بوده بعض جا در نظر بگیم که عمل قدم ها واقعی اعراض جون نبوده یکی یکی ها رو به این بررسی بکنیم چیز کبروی و کلی نگیم که این بیشتر رسا طبیقه است که ما اتخاذ کنیم